زار به نام خدای یگانه مهربان افسانه ها از وقتی که مادر و مادر بزرگ یا پیرسال خورده ای در جهان بوده وجود داشتند افسانه ها بی و بی ریشه نیستند اونها سینه به سینه نقل شده و تا به امروز نگهداری و حفظ شدند و از هر سندی معتبرتر و گویاترند در افسانه ها همه چیز ساده و روان و صادقانه بیان میشن و از پیچیدگی ها دورن افثانه ای رو براتون انتخاب کردیم نام افثانه رامپل یک پا از مردمان ترکمن برگرفت از کتاب افسانه های مردم دنیا به گردآوری عبدالرحمن دیه محمد غصا و الله دیدبان روزی روزگاری در میون مردم ترکمن آسیابانی زندگی میکرد که خیلی فقیر بود اما یه دختر مهربون و زیبا داشت روزی از روزها آسیابون فقیر پیش شاه رفت و برای اینکه خودشو آدم مهمی نشون بده گفت قبل یالم من یه دختر زیبا دارم که میتونه با کا نخ طلایی درست کنه اون خیلی هنرمنده قربان پادشاه تا این حرف رو شنید فورا گفت چه خوب اگه دختر تو واقعا اینقدر باهوش و هنرمنده فردا اونو به قصر بیار تا با چشمهای خودم هنرنمایی اونو ببینم آسیابان تعظیم کرد و گفت خربان هرچه شما بفرمایید من فردا دخترم رو به قصر شما میارم تا با چشمای مبارکتون هنر نمای دخترم رو ببینید فردای اون روز وقتی که آسیابان دخترش به قصد پادشاه بردید که پادشاه نزدیک در انبار پر از کاه و الف منتظرشونه آسیابان جلو رفت و ادای احترام کرد و گفت قربان این شما و این هم دختر اونرمند من بعد به دخترش اشاره کرد که به پادشاه ادای احترام کنه دختر بیچاره که هاج و مونده بود با دست پاچکی تعظیمی کرد پادشاه نگاهی به دختر انداخت و گفت بهتر زودتر کارتو شروع کنیم توی انبار یه دستگاه چرخ ریسندگی هست تا فردا این کاها رو به نخ طلا تبدیل کن و آسیابان کلام پادشاه رو قطع کرد و بتندی گفت او بله خوربان اون این کارو میکنه مطمئن باشین پادشاه بدون اعتنا به حرف آسیابان گفت ببین دختر دخترجان بهتر تمام سعی و تلاشتو بکنی وگرنه دستور میدم جردن تو بزنن بعد پادشاه در رو به روی دخترک قفل کرد و رفت دختر بیچاره غمگین و سردرگم شی یزنبار نشست نمیدونست چی کار کنه با ناراحتی گفت آخه آخه من چشوری میتونم این همه کار رو به نخ طلا تبدیل کنم اونم تا فردا من نمیدونم نمیدونم چرا پدرم دروغ به این بزرگی رو به پادشا گفته آه خدایا اگه اگه من نتونم تا فردا صبح این کار انجام بدم او خدایا دخترک شروع کرد به گریه کردن مثل ابر بهار دخترک گریه میکرد که یه دفعه در انبار باز شد و یه مرد کتل اومد تو و گفت شب بخیر دختر آسیابان چرا داری گریه میکنی دخترک با ناراحتی جواب داد من من باید از کا نخ طلایی بریسم اما اصلا این کارو بلد نیستم پادشا پادشا گفت اگه تا فردا این کارو نکنم گردنم رو میزنه مرد کوتوله با خونسردی به دخترک گفت اگه من این کارو رو برای تو انجام بدم تو به من چی میدی دخترک با خوشحالی گفت تو تو میتونی؟ مرد سری سریده داد و گفت البته که میتونم فقط بگو در عوض این کار چی به من میدی دخترک هیجان زده گفت گردم بند من گردم بند رو به تو میدم همین گردم بند مرد کتوله گردم دختر رو گرفت و پشت چرخ ریسندگی نشست اونو سه بار چرخوند و دوک پر از نخ تلا شد بعد هم دوک و عوض کرد هم چرخ ریسندگی او. خلیصا همینجور تا صبح کار کرد. دیگه توی انبار کاهی باقی نمونده بود و تمام دوک هم پر از نخه ترایی شده بود. صبح فردای اون روز پادشاه با نگهبانانش اومد در انبارو باز کرد. دید بله تمام کاه به نخ طلا تبدیل شده و از اونجایی که آدم پول دوست و خسیسی بود دستور داد که دختر آسیابانو به یه انبار بزرگتر ببرن تا کاه بیشتری رو به نخ طلا تبدیل کنه بعد به دختره گفت دختر جان حالا که کارت رو خوب انجام دادی باید به انبار بزرگتری بری و تمام کاهای اونجا رو هم به نخ طلا تبدیل کنی وگرنه پادشاه سکوت کرد و با اشاره به نگهبانان گفت که هرچه زودتر دختره رو به انبار بزرگتر ببرند دختر بیچاره نمیدونست چیکار کنه دوباره یه گوشهای نشست و شروع کرد به گریه کردن چند لحظه بعد همون مرد کتله به سراغش اومد و گفت اگه من تمام این کارها رو طلا کنم چی به من میدی؟ دخترک فکری کرد و گفت من من انگشترم به تو میدم مرد کتوله انگشترو رو از دخترک گرفت و نشست پشت چرخ نخریسی بعد دوباره شروع کرد به چرخوندن چرخ این شد که صبح روز بعد تمام کاها تلا شده بودن خوشحالی پادشاه حد و ای نداشت ولی چون خیلی تمکار بود دستور داد که دختر آسیابان رو باز به یه انبار بزرگتر بفرسن که کاه بیشتری توی اون باشه بعد هم به دختره گفت ها این کاه رو هم باید یه شب تلا کنی اگه این کار رو انجام بدی ملکه این سرزمین میشه وگرنه نه دستور میدم جردن تو بزنن دختر با خودش فکر کرد درسته که من دختری آسیا بونم ولی این شانس رو دارم که ملکه پادشاهی ثروتمند بشم. بعد با خوشحالی گفت وای، وای خدای من، من ملکه این سرزمین میشم، این عالیه عالی! دختر با رویای ملکه شدن منتظر اومدن مرد کوتوله شد تا بیاد و تمام این کاها رو به طلا تبدیل کنه. بالاخره مرد کوتوله از راه رسید و دوباره پرسید: اگه من این کاها رو به طلا تبدیل کنم چی به من میدی؟ دختر با ناراحتی جواب داد: من دیگه چیزی ندارم که بتونم به تو بدم. مرد کوتوله فکری کرد و گفت: پس باید قول بدی بعد از اینکه ملکه شدی اولین بچه تو بدی به من دختر که چار نداشت قبول کرد و قول داد که به خواسته مرد کوطله عمل کنه مرد کوطول شروع کرد به تبدیل کردن کاها به نخ طلایی صبح روز بعد وقتی که پادشاه اومد دید که دختر آسیابان کارها رو خوب انجام داده دستور داد که فوراً جشن عروسی بگیرن اینجوری بود که پادشاه با دخترک زیبا یا آسیابان عروسی کرد بعد از یک سال پادشاه و ملکی جوان صاحب یه بچه زیبا شده ملکه اونقدر در ثروت و ناز و نعمت قرر شده بود که دیگه مرد کوتوله رو فراموش کرده بود تا اینکه روزی از روزها یه دفعه سر و کله مرد کتوله پیدا شد و گفت حالا باید چیزی رو که قولش رو داده بودی به من بدی ملکه خیلی ترسید به کوتوله گفت من من حاضرم به جای بچم هرچقدر پول و که بخوای به تو بدم اما مرد کتوله جواب داد نه من نیازی به تلاو و پول و ثروت ندارم من دوست دارم یه بچه زنده توی زندگیم باشه ملکه شروع کرد به گریه کرد طوری که دل مرد کتوله به حالش سوخت و گفت من سه روز به تو فرصت میدم اگه توی این سه روز نتونی اسم منو بگی بچه رو با خودم میبرم ملکه تمام شب درباره همه اسمایی که بلد بود فکر کرد یه نفر رو هم معمول کرد تا به همه جا بره و هر اسمی که پیدا میشه برای اون بیاره روز اول وقتی که مرد کتوله اومد ملکی شروع کرد به گفتن اسمها کاسپر، بالتزار پا گافسوار، خلاصه خلاص هر اسمی که بلد بود و می دونست گفت ولی مرد کتوله بعد از شنیدن هر اسم گفت نه این اسم من نیست روز دوم ملکه چند نفر رو به خونه همسایه ها فرستاد تا اسم همه رو بپرسن و تمام اسم های عجیب و غریبی رو که اون روز شنیده بود به مرد کتوله گفت ولی مرد کتوله باز هم میگفت نه این اسم من نیست روز سوم مأمور برگشت و به ملکه گفتم دیگه نتونستم حتی یه اسم جدید پیدا کنم ولی توی راه وقتی از جنگل میگذاشتم به یه بزرگ رسیدم پایین تپه یه خونه بود و نزدیک اون هم آتش روشن کرده بودن. یه مرد مسخره ای که فقط یه پا داشت دور اون میچرخید و میگفت فردا بالاخره بچه رو به دست میارم هیچکس نمیدونه که اسم من رامپل یک پاست ملکه از شنیدن این اسم خیلی خوشحال شد به زودی مرد كتوله پیش ملکه اومده گفت خوب اسم من چیه میدونی ملکه فکری کرده گفت اسم تو هاری نیست؟ مرد كتوله جواب داد نه اسم من این نیست بعد ملکه با زیرکی گفت ه... شاید شاید شاید اسم تو رامپل یک باست مرد کتول فریاد زد لعنت بر شیطان لعنت بر شیطان اون اسم منو به تو گفته بعد با عصبانیت پای راستشو به زمین کوبید. جوری که پای چوبی به بدنش فرو رفت بعد برای همیشه از اونجا رفت که رفت افسانه رامپل یک پا رو از مردمان ترک من براتون نقل کردم برگرفته از کتاب افسانه های مردم دنیا گردآوری عبدالرحمن دیجی محمد قسا و فتولاخ دیدبان افسانه ها باستا ویژگی های زندگی مردم هن. روابط انسان ها و روش برخورد اونها رو با همدیگه تجزیه و تحلیل میکنن و در واقع افسانه ها تفسیرگر احساسات عمیق و جرف آدمیان. هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالح بیراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار فوزیه میر تهیه تیه کننده زهرا عبدالله زاده افصانهی دیگر بدرود